اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان انزل في ليلة القدر به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ما آن را در شب قدر نازل کردیم وَمَا أَدْرَا كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ چه می دانی شب قدر چیست؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ من ألف شهر. شب قدر بهتر از هزار ماه است تنزل الملائکت فيها روح فيها بإذن ربهم من كل امر فرشتگان و روح در آن شب به ازم پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل میشوند. سلام هی حتا مطلع الفجر. شبیست سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده.